اشهر مشهورترین معروفترین اتصل بك بهت زنگ میزنم ادفع بپرداز لاحقا بعدان احذركم شما را بر هزار میدارم به شما هشدار میدهم اشهر ثلاث كذبات الأولى و واتصل بك الثانيه خمس دقائق و انا عندك الثالثه انت ادفع و انا سا اعطیك لاحقا الاخیره احذیرو کن منها سه دروق متداول یک یه دقیقه دیگه بهت زنگ میزنم دو پنج دقیقه دیگه من انجام. سه تو حساب کن من بعدن بهت میدم آخری رو خیلی مواظب باشید